اعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام علی نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض میکنیم الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید الله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید تاعت و عبادت شما هم قبول ایده فطر رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم مجدد و آرزو میکنم خداوند بهترین تقدیرات رو برای شما تقدیر کرده من در بحث فصل و وصل شیلی با قول خودمون توضیحات و سرعت کم و مطالب بالا بیان کردم که شما هیچ گونه دیگه با قول امروزی ها جای کم نداشته باشه یعنی خمر و کامل آمخته باشید و انشاءالله که مفید براتون باشه. بحث فصل تمام شد حالا بحث وصل رو میخواییم بخونیم وصل یعنی عطف دوتا جمله با واو که این رو گفتیم که این دوتا جمله باید شرایط عطف لفظی رو داشته باشند یعنی اینکه متضاد با هم در خبر و انشاء نباشند درست شد متضاد با هم در خبر و انشاء نباشند چون گفتیم عطف خبر به انشاء انشاء به خبر جاییست نیست مناسبت در معنا هم داشته باشند یعنی این دوتا جمله به گونه با هم تناسب داشته باشند که به هم عطف بشند این را هم خدمتون گفتیم تناسب در معنا یعنی هر دو تو باش. حالا اگر این دوتا شرائط شرایط بود کجاها ما وصل میاریم؟ سه جان عنوان نکرد. یجب الوصلو بین الجملتین تو قاعده درس. صفحه 203 قاعده قاعده 64 میگه یجب الوصلو بین الجملتین فی سلاست موازعه در سه یک یک اذا قصد اشراکهما فی حکم اعرابی زمانی که جمله اول حکم اعرابی داره مثلا محلا مرفوع خبره محلا منصوب خبر کان است محلا منصوب جمله حاله محلن مجرور جمله مضاف الیه جمله اول محلی از اعراب داره جمله دوم رو عطف میکنیم تا اون هم همون محل اعرابی رو پیدا کنه. لذا میگن معطوف در حکم معطوفان علیه معطوف در حکم معطوف علیه همون حکم اعرابی رو پیدا کن. از آگوست در اشراقو همافل حکم زمانی که قصد بشه شریک کردن این دوتا در حکم اعرابی شد در حکم اعرابی ایرابی. خب که بگیم الله و و یومیت. الله مبتدا یهودی جمله خبرش و یومیت را عتد کردیم به جای یهی هر دو جمله فعلیه هم فعل مضارع و خبریه تناسب لفظی دارند تناسب معنوی هم دارند هر دو فعل خدا هستند و متضاد هستند یهی و یومید فعل ها با هم صنعت تضاد دارند تناسب در تضاد دارند فایل هم مشترک خداست تناسب در معنا هست تناسب در لفظ هم هست قصد شریک کردن در اعراب به هم حتش. خب اگر این اولی رو دیدی بیاید توی امثله توی امثله برای این دو تا مثال زده خب یک علی و قال ابو العلاء المعری جناب آقای ابوالعلاء المعری گفته و وحب بل عیشه یعنی دوستی انسان زندگی اشو علی عیشه یعنی حب بل انسان عیشه اینکه آدم عیش خودش رو بهش علاقه مند باشه حب العیش اعبد کل هرن و حب العیش اعبد کل هرن حب العیش اعبد عبده یعنی عبد ساخته زلیل ساخته اینکه انسان دوست داره زندگیشو، دوست داره زنده بمونه شرایطی که درش هست و دوست داره عبده کل هربه زلیل کرده هر آدم آزادی آدم آزاد است، عبد میشه زلیل میشه خار میشه واسه که نمیخواد این چیزی که توش هست رو از دست بده اعبدهی حوتوشه برمی کرده به حب و خبر جمله اعبد مزمیرم رابط جمله خبر و علمه اتبا جای اعبد است ساقبا مفعول اول اکل المرار مفعول دوم مرار یعنی چیز ترقیه های بسیار ترقیه برست شو مثل گنگنگی های خیلی ترقیه و علمه ساقبن و این که علاقه داره زنده بمونه میآموزد آموخته است به انسان انسان گرسنه علما ساقبا با آدم گرسنه آموخته اکلل مرار حاضر زهر مارم بخوره هر چیز تلخی رو بخوره که زنده بمونه منظورش اینه که حاضر تل به هر بدبختی بده مصیبتی بده زنده بمونه آزادیش رو میده این عبد کل هرن محلا مرفوع خبره و علم ساقبن اکل المرار هم محلن مرفوعه این هم خبره اما با واعت شده معطوف در حکم معطوفان علیه ساقب یعنی جائع یعنی گرسته اکل المرار یعنی خوردن اون گرسته چیز تلخ رو یعنی اکلهو المراره یعنی خوردنش هر چیز تلخی رو به مون می آموزد از, از و از جای ولمرار شجرون مر تلخ یقولا این خب بالحیات این اینکه دوست داره زنده بمونه تو این دنیا باشه یج علال هر رعب و یزتر رول انسانه این علاقه مجبور میکنه انسان رو الاحتمال العذاب به اینکه که تحمل کند هر گونه آزار و عزیتی خب این مرفوع بود خبر بود حالا نگاه کنید وقال ابو الطيب آقای متنبی بود ول سر و برای رازها و برای اسرار منی در پیش من از جانب من موضع محلیست است یعنی محل مخصوصی است یعنی محلی یعنی محل مخصوصی است موزی است از این نثر منی خبر مقدمه متعلق به ثابت موجودان موضعان مبتدا ما من یک محلی دارم پیش خودم برای رازها لا ینالوه ندیمون دسترسی پیدا نمی کند به این موزه هیچ ندیمی ندیم نکره در سیاق نفی فاعل هیچ هم نشینی هم به این راه پیدانه میکنه معمولا وقتی میشه سر بساط بعد که سر بیرم میشد خب اصرار رو بیرون میریفت وقتی که مستی به او غلبه میکرد اون قدرت کتمان را از اون میگرفت خیلی چیزا رو میگفت دیگه تو عالم مستی میگه نه من یه موضعی دارم که هیچ ندیمی تا حالا نتونسته راز رو از اونجا بیرون بگیش ولا لا یفزی علیه شرابون لا یفزی یعنی لا یعدی و نمیرسه منجر نمیشه علیه به این موضع هیچ شرابی شراب هرچقدر تیز و تند باشه نمیتونه قوه ماسکه من رو از بین ببره و راز افشانی کنه هیچ ندیمی هم تا به حال نتوانسته است خب یعنی من در این شرایط هم راز دارم، دیگه در شرایط دیگه مشخص است. این جمله لا ینالهو ندیمون محلن مرفوع صفت موزه. جمله بعد از نکره صفت. و لا یفضی علیه شرابون اینم عطفده، اینم محلن مرفوع صفت. پس اون خبر بود این صفت. پس میتونه حال مزافن علی، خبر کانه از این لو مواردن باشه. لا یَنَالُهُ غُ غیر میگرده به موضع رابطه اله خب صفت لا یُفْزِ یَنِیحه یعنی به برمیگرده خب جمله صفت باید رابط داشته باشه اینم رابط خوب تمام شد نگاه کنید پایین؟ ان ندیم الجلیس علی الشراب جلیس یعنی مجالس هم نشین بهن با صوت شراب و یُفْزِ یعنی یَنْتَهی یعنی یُعَدّی درست شد یهولا اینهو کتومون لسر میگه من نسبت به راز خودم رازهایی که پیشم هست کتومم خیلی کتوم نکنه یزعوهو حیث الله یدتله و علیه الندیم قرار میده او رو در جایی که هیچ ندیمی به او اطلاع پیدا نمیکنه ولا یک شفاانه هو شراب و هیچ شرابی هم نمیتواند او رو کشفش کنه این رازداری رو از او بکنه نگاه کنید توی بحث نگه مشخص تعمل این اعبد کل هرلن و علم ساغبن اکل المراری فی البیت الوله در بیت اولین دوتا جمله نگاه کنید تجد انلل اولا من هما موز انمن ال اراب میبینی جمله اول محلی از اراب داره خبر خبرون للمبتده قبلها خبر هست برای مبتده داره. و اندال قائله اراد اشاره استانیت لحافی از همچنین قابلیت و قائل خاص شریک کنه جمله دوم رو با این جمله اول در این همچنین قابلی این خبر بوده و تأمل جملات این لاینالو ندیم ولا ولایت زیلیه شرابان فرد بیت استانی در بیت دوم تجد اندال اولای عزان موزه من الی را ببینی اولی محلی از اراب داره، لأنها صفتون لنکرت قبلها چون صفت برا نکره قبلش و انهو ارید اشراک و سانیت لها فی هازالعج و اراده شده که دومی هم با این در این حکم ارابی شریک باشه اونم بشه صفت و ایزا تعمل در جمله سانیه تفیکل منالبیت اینه و جدت هم معتوبتن على جملت موصولتن به هم میبینی وصل اومده و عطف شده جمله دوم به جمله اول چون قصده اشراک شریف کردن در اعراب و که یجب الوصف بین کل جملتین جاعت و علاها زندن همچنین از واجب وصف بریم بین دوتا ای که بر همین شکل باشه یعنی قصد باشه که دومی به اولی عطفشه تا شریک در اعراب اولی باشه خب این موضع اول میشه اشراک در اعراب موزه دوم ازا اتقاق تا خبرن او انشا در خبر و انشا با هم متفقند هر دو خبریه یا هر دو انشایی درست شد هر دو خبریه یا هر دو انشای خبر و انشا هم به ظاهرشون نمیشناسیم خبر و انشا رو ما با هم خوندیم خبر و انشا... خبر اونه که ما یهتمه رو ولکز و نزاته مونه که مالا یهتملو از صدقه ولکز و نزاته ممکنه یه ای در ظاهر خبریه باشه ولی در باطن انشا این خواسمون باشه که خبر انشا خبر و انشاه انشا به تعریف ماست به محتویست الان مثلا اینو نگاه کنید علم نشره لکسد و وزن آن آن که وزرگ، علام نشله که سدرگ، سوری انشراح فلادی، علام نشله که و وزن آن آن که وزرگ، خو خب و وزان آت پدوب جه علام یکی بگه اه. خب علم نشته. همزه ای، خو علام انشاء هم زیست و وزان آن خبری است، یکی جوری عرض شده. جوابش تو خوندیم همزه علم نشته استفقامه در معنای نفیه لم هم نفیه نفیه در نفیه اثبات میشه قد شرحنا و وزهنات خبه جایی دو تا جمله خبریه به هم شده این ظاهرش انشاست اما باطنش خبره و جمله خبریه به خبریت شده یعنی قد شرحنا لکه صدرک ما سیله تو رو گشاده کردیم و وزن آهن که و بار رو از تو برداشتیم خب ازا اتفاقت و خبرن او انشاهن و کانت بینه هما مناسبتون تامن از نظر لفظی ارتباط دارن از نظر معنایی هم مناسبت تام داشت باشن ارتباطشون به همین علم نشره لکه سرگ که خوب مشخصه هر دو جمله فعلیه هستن هر دو خبریه هستند هر دو فاعل خداست ارتباط معنایی دارن با هم دیگه داره خدا مننت میگذاره که بعد پیغمبر خودش شد ولم یکن هناک سبب یکتزل فصل بینهم ببینید ولم یکن هناک سبب یکتزل فصل بینهم یا هیچ مانعی هم وجود نداشته باش یعنی از نظر لفظی تناسب باشه از نظر معنایی هم بگید تناسب باشه مانع هم وجود نداره اون دو تا مقتضیه وصلند که در خبر و انشا متفقند در معنا هم مناسبند اینا مقتضیه وصلند اما مانع هم نباید باشه مانع اگر باشه نمیشه یادتونه تو اون از توسط بین الکمالین که گفتیم سه تا جمله هست جمله اول و دوم و سوم جمله سوم میشد به جمله اول عطف کنیم چون تناسب در لفظ داشت تناسب در معنام داشت اما چرا عطف نکردیم چون مانع پیش اومد مانع چی بود اینکه اگر عطف میکردیم بگید توهم میشد که عطف شده به جای جمله دوم عطف شده به جای جمله دوم و این خلاف مقصود رو مفهوم لذا عطف نکردیم و درست یعنی مقتضی باشه مانع هم مفقود باشه مقتضی موجود مانع مفقود اون موقع میشه شرایط دوم چون مانع اگر باشه مانع قویه همیشه مانع از مقتضی قویتره مثلا تو عالم خارج هم همینه الان شما پنبه اگر داشته باشید که بهش بزنید چی میشه آتش می‌گیره پنبه اختزای اینو داره که کبریت بهش برسه آتیش بگیریم اختزای مقتضی کبریت که که این بخوره به اما اگه همین پنبه خیست باشه چه هرچ کبریت ها؟ روشن نمیشه چرا چون مانع هست مانع باید مفقود باشه مقتضی هم موجود این میشه شرط دوبار. شرط دوبار. است برای این دو مثال توی بحث امثله کتابتون هست سه و چهار سش حالا یه مثالم که من زدم علم نشره لکه صدرک که در ظاهر یک انشایی که خبری بود ولی هر دو خبریه بود خب مثال و قال قان عبودتیب یو شمه رو للوج انساقهی و یقمره الموجف صاحبی این معادله یه و مثال فارسی حاله توضیح بدن بعد ببینید میتونید به شمره شمه رو شمه رو یعنی آسین بالا زد شمه رو انساعده یعنی آسیناش رو بالا زد شمه رو انساقه یعنی پاچهاش رو بالا زد. مم. پاچوهاشو ورمالی درست شده نه خب آستین بالا زدن مشخصه کنایه نایه یعنی این کار به اقدام بکنیم پاچوهاش هم ورمالی این هم مشخصه یعنی خود بزنه به دل کارو بره جلان درست شد میگه پاچوهاشو ورمالی ده که این کارو بکن. خب نگاه کنی چی میگه یه نفری رو میگه میگه یوشنبه رو لج لج قسمت امیق آب دریاست لجه اون قسمت امیق آب دریا رو میگه میگه قسمت های عمیق آب دریا برای این قسمت ها یوشنبه رو انساقی یه ذره این پایین شلوارش رو میزنه ده. یه ذره ساق پاشو رو میکشه لباس رو از او بالا و ساغ پاش رو بیرون میندازه مثلا مثل یه جای یه مقدار بارون اومده خیسه چون میخواید فرض بفرمایید که شلوارتون یا لباستون خیس نشه یه ذره اونو میگیرید بالا یه ذره تا میزنید بالا رنگ میگه این موقع که میخواد بره توی قسمت عمیق آب دریا چنین میکنه. یوشمر وللوج انساقی خب بعد میگه و یغمر هو یعنی فرو پوشاند رو فرا گرفت رو و یغمر هو الموج یعنی موج در یم موج دریا یغمر هو الموج موج میاد او رو خفه میکنه فرامیگیره میگیره به ساحلی موقع که تو ساحل وایستده تو ساحل دریا موج میاد او رو فرامیگیره و خفه میکنه تو ساحل یعنی دیدید که یه قدیم و ساحل آب میاد و مثلا تا میگه این تو ساحل وای آب میاد خفش میکنه اما از اون طرف میخواد بره وسط آب دریا یه ذره از پاچه هاشو میگه بودن و یقمر و حوال موزیو استاهلی درست شد؟ الان یو رو فرض کنید فایلش آقای زیده این جمله فعل مزارق خبریم هست و یقمرهو هم مفعولش همون آقای زیده این تناسبه در معنی داره. هر دو در مورد یه نفره کار او رو داره توضیح مرد تناسبه در لفظم دارن هر دو خبریان فعیلیان مزاریان رضا به هم عد شده اما محل عرابی نداره جمله اول ابتدایی جمله است بقوله امروزی ها ابتدایی جمله جمعه است مستعنف است جمله دقام هم محل عرابی نداره خب این شعر معادل کدوم مسئله فارسیه ماست میگه فلانی میخواد بره وسط دریا قسمت عمیقا به دریا یه ذره پاچه هاشو میده بالا ولی از اون طرف تو ساحل واسده آب میاد و او رو فرا میگیره و غرق میشه خفه میشه این بیتش عنوان عنوان زربالمسل هم اخر استفاده میشه معادل زربالمسل فارسی خودمون است. پیدا کنید این زربالمسل معادل نگاه کنید حالا ببینید پایینه میکنه. سه الوج مؤزم الماء میگه مؤلوج مؤزم الماء قسمت بیشترین آش ول بیت و این بیت زرب المثله یوز ربول من توحدسوه و زرب المثل زده میشه برای کسی که توحدسوه و او. او رو تمعهاش سخن میگه با او به ادراک مطالب العظیمه تمعه او رو به خودش میکشه تمعه او رو تحریک میکنه به اینکه تو میتونی مطالب عظیمی رو بگیری تو میتونی خیلی کارا بکنی اما وحوه یه اجزا علالیه سیرته و حالان که او از کار کچیکش منده تو آه میگن فلانی رو به ده راه نمیدن سراغ خدادار میگیره نمیتونه بره تو ده از در دهراش نمیدن تو اما سراغ خدادار میگیره خود فکرش این مثال اول مثال دوم مثال دوم بale، بله، اینم درست. لقمه گندتر از دهانش برد. خب، خاصن بفهمونم که خدمتتون که بعضی از شعرها بهشون میگن ارسال مثل، یعنی اینها شعرهایی است که به عنوان ضرب المثل در زبان عربی جا داده آ، همینه از شعر متنبی. که یوشن بر ولل لج جنزاقهی و یغمر او الموج و قال بشار بن برد بشار بن برد ببینید چی میگه این شاعر نابینای قرن چهارم میگه و ادنا یودنی ادنا یعنی نزدیک کردن یعنی قرب نزدیک کن. و عاد نیلال قربا قربا ال افلام داره یعنی قرباک یعنی نزدیک کن به نزدیک به خودت یعنی قرب ایل جنبک به نزدیک خودت بیار کیا ال مقربان نفسه هو یعنی ال افلام و زد اسم مزاحنه یعنی عرب. چه الفلام موصوله یعنی اللذی یغره با نفسه به نزدیک خودت بیار المغره با مفعوله یعنی کسی رو که یغره با نفسه یعنی یغره با نفسه خودش رو به تو نزدیک میکنه یعنی بمیر برای اون کسی که لاغل برای تاعت بکنه عدم ایال قربا المقرب نفسمو یعنی المقرب نفسمو ایال یعنی آلذی یقرب نفسمو ایال اونو عدم ال نفسک ایال الان قرباک ایال جنبک این خوبیه زر بول ماست چیزی نصیحت بود که پیش خودت بیار نزدیک کن به خودت اونی رو که اون هم علاقمند به اینکه به تو نزدیک بشه هست بعد میگه چی؟ ولا تشهد شورا یعنی ولا تشهد شوراک یعنی فی مشورتک فی مشورتک در مشورت خودت لا تشهد یعنی لا توحذر حاضر نکن در شورای خودت امرهن شخصی رو که غیر من کتوم نیست رازدار نیست و هرگز کسی رو که رازدار نیست در شورای خودت آذر نکن راه نده حالی مشورت نکن با آدم دهندق. خب میخوای باش مشورت بکنی یه چیزی رو تا بهش میگی میره این و ور. میگه هیچ تا تو بخوای تصمیم بگیری همه عالم و آدم فهمیدن مشاور اگر خواستی با کسی مشورت کنی قبل از این اینو امیر توی نامه مالک اشتر میگه با کسی مشورت کن که حتما خصوصیت کتون بودن رازدار بودن داشته باشه خود فلا تشهد است انشاست ادفل به جای عدنه درست و هر دو انشاییه هر دو نصیحت هر دو خطاب به یه نفره پس بنابراین من مناسبت در معنا داره مناسبت در لفظ هم که هر دو انشایی هم داریم می‌بینیم داره درست شد؟ پایین نگاه کنید میگه یقول و قلب من یتقرب و الهی که به عقلهی و کماله درست شد نزدیک کن به خودت نزدیک شو به کسی که اون هم نزدیک میشه به تو به عقل هی و کماله قرب من نزدیک کن کسی رو که یتقرب الیک به تو نزدیک میشه با عقل و کمالش یعنی با دلبفا نه به زور ولا تستشر امام لا یک تو مل اصراره. و هیچ موقع طلب مشورت نکن در مقابل کسی که رازدار نیست نگاه کنید توی قواعدی که خوندیم قواعد رو بحث رو ببین اون زن فلویت سال سینل جملته اینه یو شم برو للوت جنساقهی و یقمرهو الموجوف دو تجد هما میبینی این دوتارو متحدتین خبرن متناسبتین تناسب در معنا دارد. حالا مناسبت در معنا رو این پایین مثال زده دیگه منم چندین مورد گفتم نگاه کن یراده به تناسب ان یکونه بین اینه. رابطتون تجمع و بین همو بیده دوتا جمله رابطه ای باشه که این دوتا رو با هم جمع میکنه ارتباط به هم دارن مثل چی؟ چه یکون المسند و الی بل اولا لهو تعلق بل مصند مثل مثال اول مصند در اولی توی دومی شده تعلق تعلق یعنی مفعول درست شد؟ لهو برای اون مصندان لای تعلق هست. یعنی تعلق یعنی مفعولیت هست به مصند در دومی یعنی منم گفتم بودم الان شما نگاه میکنی شنبه شمبرو اگه فایلش زیده توی جمله دوم یقمرهو اونها بل میگهد به همون شده مفعول اونه که مصندان علیه تو جمله اول تو جمله دوم شده متعلق یعنی غیر مصندان چون ما یه مصند داریم یه, داریم. یه, داریم. یه متعلق یعنی دار شده قید تو جمله دوم یعنی متعلق هر که مصند و مصند نباشه بهش میگن متعلق یعنی قید و که انیکونه المصند فی فیل ال اولا مماسلن للمصند فسانیت مصند در اولی مناسبت مماسل همشکل با مثند در دومی درست شد مصند تو اولی همونیه که تو دومی هم همونه مشخص شد نه میگم مثلا یوهب با زیدون امرن و یوهب با امرون زیدن زید امرو دوست داره امرمونو دوست داره رضی الله عنهم و رضو عنه درست شد همشکلن دیگه مصند ها مماثلن رضی الله آیه قرآن رضی الله انهم و رضو انهم درست شد قرآن داریم یوهب بهم و یوهب بونه اینا خدا رو دوست دارن خدا دوست دارن. هم شکل درست و که انگکون المصند فیل اولا مماثلن للمصند یا مزادن لهم یا متضاد باشه مسند مثل اما الله و یهی و یومید مثل از حک و ابکا اما و احیات و احیاطقر آن داریم اینا تنا دیگه شما میتونید بید خب ولیس لیسباک تو م ولیس لیصاک من سبب یک یتذل فصلن هیچ سببی هم که استاعی فصل کند وجود؟ نداره و لذالکه اوته فتسانیتو علال اولا و به خاطر همین دومی و اولی عطف شده ولی مثال رابه کذالک مثال دوم هم همینطوره مثال چهارم مثال دوم این موزه مکونون من جملتین که از دو جمله تشکیل شده متحدتین دو تا جمله متحدند انشاءا از جهت انشاءی هما عدنه و لا و هما متناسبتان و فلمانا چرا چون فایل توش یکیه هر هم نصیحته هر هم و لیسه هناکم سبب این یقت الفصل چیزی هم که فصل کنه نیست و لذالکه اوتفت الثانیت و علال اون و ها که زایج و بین کل جملتین اتحده تا خبرن بین دوتا ای که متحدن از جهت خبری او انشاء. و تناسبت ها فیلمان و مناسبت در معنام دارن و نم یک کنه که ما فصل و, و چیزی هم که قضای فصل کنه بین این ها وجود نداره حالا میرین سر موضع سوم از جاهایی که ما وصل میاریم از جاهایی که ما وصل میاریم توجه کنید ببینید گاهی اوقات از ما سوال میشه. نه یعنی تو عربی سوال میشه. مثلا فلانی مریض بود خوب شد. خب ما جواب میدیم یا میگیم بله یا میگیم خیر. یا سوال میکنه میتونم کمکتون بکنم؟ خب یا میگیم بله یا میگیم خیر. خب توی عربی فرض کنید فرض کن. من به شما میگم حل اصایدو که فی قضاء حاجتک حل اصایدو فی قضاء حاجتک یعنی چی؟ میتونم در رفت مشکل شما به شما کمک کنم؟ فرست شو؟ خب شما اگه بگید نه نیچه اشکالی نداره میگه نه. بعد عرب میگن نم بعد پشتش یه دعا میکنن همیشه اینطوری جواب که میدن دعا میکن. میگن بله خدا خیرت بده ما هم گاهی اوقات میگیم مثلا میگه نم ساعدک الله نیچه اشکال نداره نم ساعدک الله اما اگر یه موقع بگه نه میگه میتونیم کمکتون کنیم میگه نه خیر بعد بخواد دعا کنه میگه لا ساعدک الله لا بر سر فعل مازی اگه بیاد اگه تکرار بشه فعل مازی نه منفیه اگه تکرار بشه حرف نفی مثل لا صدقه و لا صلا نه نماز خون نه تصدیق کرد نه ایمان آورد نه نماز خون لا صدقه و لا صلا حرف نفی اما اگه لا بر سر فعل ماضی بیاد تکرار نشه این دعاست انشاست نفرینه مثل لا سمح الله خدا اجازه نده لا زلطا مریضن انشالله همیشه مریض باش دعاست حالا اگر بگه لا ساعده که الله چی میشه توهم میشه که این داره میگه خدا کمکت نکنه نفرین بر تو م? ببین اگر بنویسیم ملاک بنویسیم ممکنه بنویسیم لا بعد یه خط تیره بزنیم یا یه ویرگول بذاریم یا دو تا نقطه بذاریم بعد بگیم ساعدک الله میشه اما تو بیان که ما همیشه کلام رو داریم بحثم. تو کلام نمیتونیم بگیم مثلا لا شوله نیرگور سا کل الله نمیشه که یا بگیم لا خطم مبسوط سا الله خب اینجا چکار کار باید بکنیم چون خلاف مقصود حاصل میشه میگن اینجا یه واو بیارید میگن لا و سا الله اون لا جمله سا اینه که میدونید دیگه این در واقع اون شورت انسره اون جواب کوتاهه. در واقع وقتی میگه لا هل اصاعدو که که قضاء حاجتک شما وقتی میگه لا یعنی لا حاجته نی در واقع جواب میدید یه جواب بلنده اون لا یه جمله خبری است نه حاجتی نیست اون وساعده که الله هم کدون قاعدتاً این دوتا نوید به هم عطف کرد چرا چون یکیش خبر یکیش انشا نیازی نیست بعد میگید خدا خیرت بده درست شو. این نیازی نیست خدا خیرت بده یکیش خبر یکیش انشال ولی یکیش نمایندگی داره از اون میکنه یه حرف الله اگر شما بچسبونیدش به فعل مازی اونجا باید واف بیاری چرا چون تبدیل میشه به اینکه توهم مفرین بشه توی سهیر بخاری هستش که میگه ابوبکر خلیفه اول در بازار راه میره خب یه چند لحظه‌ای قطع شد. درست شد. حالا انشالله که دیگه الان قطع نشه. گفتیم که عبی بک در بازار راه می‌رفت دید یک نفر لباسی داره می‌فروشه. بهش گفت: "عطی و هازا دستش بود." اون گفت: "لا ساعدک الله." تو اون روایت داره که ابوبک بهش گفت: "لا تقول خاکزا، اینجوری نگو. قل لا و الله کلا یا شد حالا در هر حال این هم موزه ثومه درست شد موزه سومه که ما میاییم برای خاطر که معنا رو حفظ کنیم عطف خبر به انشار رو میپذیریم میگه میگه واو اینجا بگذیریم حالا نحوی ها نحوی ها اینجا میگن این واو واو استینافی است. و به قول خودم این دوتا به هم عطف نشده چون خبر و انشاء عطف نشده ولی ما که الان داریم بلاغت می خونیم اینجا ما یا باید عطفو بپذیریم یا معنا خراب بشه خود بهتره که معنا درست باشه دیگه ما حرف معنا رو بفهمیم حالا عطف نداریم این یه موزه عطف خبر و انشاء شده باشه میگه ازا اختلاف ها خبرا و انشاءا جایی که مختلف باشن از جهت خبر و انشاء. و او حمل فصل خلاف المقصود و اگر شما فصل بیارید که اختزای این که خبر و انشایی یکی نیستند اختزاش فصله ولی اگر فصل بیارید خلاف مقصود حاصل میشه میشه نفرین و این ملاک نیست حالا نگاه کنید تو همسله دو تا مثال زدیم پنج لا و بارک الله و فیک نه خدا به تو برکت بده خدا به تو خیر بده ساعده که باز توجیب که من جواب میدی با این به کسی که به تو گفته من قاله هل لکه حاجتون اصائد و کفی غذاه ها آه. آیا تو حاجتی داری که من برآورده کنم؟ آیا خواسته هست که من انجام بدم؟ شما میگید لا؟ لا بارک الله فیک نه آقا خدا خیرتون بود خدا هم بد بده ولی اگه بگی لا بارک الله فیک و طرف فکر میکنه گفتیو خدا خیرت نده شد خب این نوع تلفظ شنین است دو شش لا و نتف الله به حالا گای اوقات ممکنه شما دعا به مخاطب بکنیم بایه مم. وقت ممکنه دعا به شخص ثبا می بکنی مثل اینکه که یه نفر ازت سوال میکنه خلاصه خلاف مقصود میشه میگه لا ولتفل لا به خدا انشالله بهش لطفی بکنه خدا انشالله کمکش کنه توجیب و مثال که من قال جواب میدید با این به کسی که گفته هل ابل لأخوک من علته گفته فلانی هل ابل یعنی شفیه شفایف هل ابل لأخوک آیا شفا پیدا کرد برادر شما از مریضیش؟ آ، برادرتون بیمار بود خوب شد؟ شما میگید لا نه ولتفال لا هبه خدا خیرش بده انشالله. خدا انشالله بشی لطفی کنه درست بشه درست شو؟ اگر شما بگید لا لتفال لا به یعنی خدا خیرش نده خدا انشالله کمکش نکنه خلاف مقصوده خلاف مقصود نگاه کنید عنذر فیلم سال خامسه علال جملت این لا یه جمله و بارک الله و الان این بارک الله و فکر انشایی نگید که این فیلم ماضی خبر ما گفتیم انشا و خبر رو به چی میشناسیم؟ به چی میشناسیم؟ به معنا این بارک الله و فکر به اندازه آزمایش میشه اللهم و بارک له این طور میشه من بارک الله فیک تجد انل اولا خبریتون میبینی جمله اول خبریه اون لا جمله است اون نمایندگی از اون میکنه لا خبریه است و ثانیته انشائیه تون اونم دومی هم انشائیه گرچه در لفظ مازی آمده و به شکل خبریه برای مبالغه و انک لو فصل تفقد اگر تو فصل بیاری اینطوری بگی لا بارک الله و فیک لا توهم الصامع انك تدعو عليه شنونده گمان میکنه تو داری بهش نفرین میکنی فهینه در حالی خب ظاهرا الان صدا رو باید داشته باش درسته اینم هم امروز هم داره با ما یه مدار شوخی گرفته. و کذاال کل حال فی جملتی المثال اخیر و همچنین از حال در دو جمله مثال آخری و فی کل جملتین اختلاف تا خبرن و انفاع و در تمام دو جمله هایی که، اختلاف دارن در خبر این و کان ترکل عطفه بین همه یوه مخلاف از مقصود ایهام خلاف مقصود رو میاره دو نگاه کنید هاشیه دورو رو لا فی هاز الموزه قائمتون مقام جملت خبریت لا در اینجا جانشین یک جمله خبریه شد از تقدیر زیرا تقدیر عبارت اینه لا حاجت علی میگه لا لا حاجت علی. اون لا میشه جواب کوتاه باید لا حاجت علی. حاجتی من ندارم و کزاله که یوغالو فیل مثال ثانی همچنین در مثال دوم باز لا درست شد نمایندگی داره میکنه از این لا یعنی ما اول لعخی تو جمله دو فر. سه جمله بارک الله فیک گفتیم جمله لفظش خبریه است اما معناش انشاییه جملت و بارک الله و فیکه خبریتون لفظن انشاییتون معنن وله ابرتو یعنی وله اعتبارون همه تون میدونید که اعتبار به معناست ما خبر و انشا رو به واسطه معنا تشخیص میدیم نه به واسطه لفظ و اینجا هم میار همون معناست. نگاه کنید به نموزش دیگه راحت شد یه تعداد نموزش می‌خونیم که اینها خودشی متون لعظم نصر کامله و شما رو هم برای فصل هم برای وصل همه باب رو با هم دیگه به قول خودمون دوره میکنه میگه لبیان مواز الوصل و الفصل فیمایتی ما از ذکر سببی کل مثال حال یک قالت الله ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خب الذين اسم الناس كفروا سواء خبر مقدم علیهم متعلق به سبا. انذرتهم تعبیر به بستر میره امزه رو شون حمزه تسنیه یعنی انذار رو که یاهم مبتدا مؤخر ام اما آتفست لمتون زرهم یعنی وعدم و انذارک میگه کسانی که کافر شدند مساویس بر اینها این ای سواغان خبر مقدم انذر ته هم مبتدای ماخر بر اینها انذار کردن تو و انذار نکردنت تو بگی و نگی براشون فرق نمیدون خب بعد میگه لا یعمنون این سواغان علیهم انذر هم خبر این این لا یعمنون در واقع داره اینو تأکیدش میکنه ها داره در واقع این کارش میکنه بگید تاکیدش میکنه همون معنا رو داره میگه دیگه هیچ فرقی به قول خودمون از لحاظ کلی نداره این سبوان علیه منظر هم یعنی چی یعنی لا یوم یعنی. تاکید معنایی درستو مثل اون مثال خود ایشونه که و مد در روه لامن روات قصائدی و مد ده روه لامن روات قصائدی ازا تو شرن از و حد در من شده از متنبی و هممون مثال زه نگاه کن خودش چی میگه فصل ن اینل جملت این جملت سووا اون علیه وهن زرت هم و جملت لا يؤمنون این دو فارغ اصل اومده لنه بینه هما کمال الاتصال بینشون کمال اتصال از انا نه انا برخوندشه از ان ثانیته توکی دن لد اولا اون لا غلطه از ان ثانیته توکی دن لد اولا نه لا توکی دن لد اولا اون لا قد بزنید اون انرم رم نکنید. کنید زیرا جمله دوم تاکید است برای اولی اونم تاکیده معنوی خب این مالی ای. درستو بریم سر مثال دوباره قال الاهرفوب نو قیس اهنف ابن قیس گفته به یه نفری داشته نصیحت میکرده گفته لا وفا الکذوب و لا راحت لحسوده. فلانی بدون وفا از آدم دروغگو نخواه آدم دروغگو هیچ وفایی بهش نیست. دروغ میگه میگه وفا میکنم نمکن لا وفا الکذوبن و كذوب لا راحتل حسود آدم حسود هم هیچ مقاسایش نداره خلاصی چیزی پیدا میشه یکی گلا داره یکی ماشین داره یکی کفش داره یکی خونه داره یه یک چیزی میبینه و حسادت می‌کنه یا همیشه حسود داره می‌سوزه آدم حسود آسایش نداره آدم کذوب دروغو هم وفایی به اون نیست هیچ وفا انتظار داشتن از او غلط است خب این دو تا جمله هر دو جمله خبریان هر دو اسمیان تناسب در معنا هم دارن هر دو نصیحت اند به هم گفت نگاه کنید چی میگه وصله بین از جملتین لتفاقه ما خبرن و تناسوبه ما فیلمان که هر دو نصیحت هستند رو به یه نفر میگه و لعنهو لا یوجدو هنها که ما یک فصل چیزی که افضای فصلم کنه وجود سه و قال تعالی و او جسم منهم خیفتن لا تخف میگه ملایکه اومدن خدمت ابراهیم او؟ حضرت ابراهیم براشون قضا آماده کرد گذاشت اینا نخوردن دستشون دعاز نکردن بعد ابراهیم یک مقدار دلشوره گرفی خیفه بر وزن فعلتون برا نوعه درست شد؟ وزن بر برا نوعه مثل جلست و جل ستن یعنی یه نوع نشستن امیر المومنین در مورد پیغمبر میفرماید که کان یجلس و جل عبید پیغمبر می نشست همانند نشستن بندگان اینجوری نبود کسی بتونه تشخیصش بده که این بایا او می شست. نه جل ستل عبید مفهول و نوعی کان یجلس و جل عبید اینجا میگه او جس من هم احساس کرد ابراهیم من هم از این فرشتگان خیفتن یه نوع ترسی یه نوع ترسی از اینا احساس کرد که اینا حتما برای کار مهمی می اومدن بعد میگه قالو لا تخف قالو لا تخف گفتن نترس ابراهیم ما با تو کاری نداریم اومدیم بریم سراغ قوم لود او؟ این قالو لا تخف چرا نگفته و قالو عطف نکرده چون شبه کمال اتصال چون وقتی میگی که یه نوع دلشوره ابراهیم گرفت همه میگن خب اونا چی گفتن اون بلایه چی گفتن نگاه کنید فصلت جملت فسلت جملت و قالو هم جملته و عوجه هم قیفته لعن نبینه هما شبه کمال الاتصال اذ سانیت و جواب لسؤال یفهم و من الولان چأن نسائلن سعد فما ذا قالوا چی گفتن به او که این را موقعی که دیدن ابراهیم را اون فرشتگان وقت داخل او خوف و قالان که داخل شده بود به وارد شده بود بر اون ترس وقتی دیدن دلش رو ترس گرفته چی گفتن بهش فاجیبا جواب داده شده قالوا لا تخف گفتن لا تخف ام؟ ام؟ خب اینم سه چهار رو نگاه کنید و جا افل حکم در حکمت ها اومده این حکمت اینطور نیستش که چی باشه ها مثلا هر کدومش یه حکمت یه جمع شده چند تا حکمت نوشته حکمت یک حکمت دو حکمت سه به هم عط نشده جا افل حکم هر کدومش یه حکمت مثلا اینکه بگیم زربال مسلها زربال مسلها رو پشت سر هم بیاریم و این به هم عطف نمی کنه. هر کنیشون یه موصف کفا به شعیب داعن این خودش یه حکمتیه به ما زربال مسل هم استفاده با. اون بایه به شیب، بایه زایده است یعنی کفا شعیب و داقن. بر سر فایل کفا بایه زایده میان مثل کفا به لاح شهیدان کفا به شیبه داعن داعن هم تمیزه. یعنی پیری خودش به عنوان مرز بسه این یعنی و پیره دیگه نویل ازش بپرستی چیه اون پیره دیگه پیر خودش بالاترین بریضیه پیری کفا به شی بدان دو میگه حکمت سلاح الانسان کی حفظ اللسان میگه حکمت دیگه است. شاید اون یکی گفته اینه یکی که حکمت ها رو جمع کرد مثل یه زلول مثلا سلاح الانسان کی حفظ اللسان اینجا دیگه نمیگه و صلاح الانسان ربطی به اما اون یه حکمت یک حکمت صلاحول انسان تی حفظ لسان خیر انسان در حفظ کردنش زبانش خیر تو در اینه که زبان تو بتونی کنجور کن طول ممکنه حکمت های کوچیک دیگه ای هم بیاد نگاه کنید چهار رو مگه خسره بین الجملت لن لبین هما کمال الانقطاع از و ناسبته فی المعنا بین جملت اولا و جمعه سلام اون یه حکمته یه حکمته دیگه است اون داره در مورد پیری صحبت میکنه این داره در مورد حفظ زبان صحبت میکنه و یون لی امام علی کرمالله الله چه و نسبت داده شده به امام امیر المومنین علیه آلاف و التهییت و السلام این یعنی از روایاتی که منصول به امیر رو که تو نحجا هم هست میخار ماید دعیل اصراف دعیل یعنی اطرک دعیل اصراف الاسراف یعنی هر نوع اصرافی کنار بذار اصراف در هر چیزی میخواد باشه کنار بذار مقتصدن در حالی که میان ردی است کنی وقی کسی میبینی اصراف رو کنار میذاره از اون ور میورده دیگه حسابی بخیل میشه نه خود میخورده نه به کسی میده این نه نه نه نه اینطور نه, نه،, این نه. داخل اسراف مقتصده اسراف رو جنار بذار در حالی که بگو مقتصد هستی میان روح هستی وذکر فلیوم قدم در امروز که توش هستی فکر فردات هم باش یعنی دنیا که هستی آخرت هم داری تو فکر اون هم باش وَذْكُرْفِلْيَوْمِ قَدَا سجعه شو میبینید در اینه اصرافه مقتصدا وَذْكُرْفِلْيَوْمِ قَدَا وَمْسِكْ مِلَلْ مَالِ به قدر ضرورتک از مال دنیا نگه دار به قدر ضرورتک بردار به اندازه ضرورت اون هر چقدر ضرورت داری پردن، پوشیدن، مصرف کردن از دنیا هرچی میخوای استفاده کن، به قدر ضروره و قدمیل فضله لیوم حاجتک و اضافه اون رو پیش فرست قدم تقدیم کن لیوم حاجتک برای روز نیازت کنار بذار یعنی انفاق کن به کسی بده این فردایی که نیازمند میشی پیش خدا بانکت پر این دوتا جمله سجع قاف دارن خیلی قشنگه امسک منال مال به قدر ضرورت تک تک و قد بن فضل ل يوم حاجه تک درستو خب حالا چرا اینها به هم حد شده چون هر شارتاش کلام نصیحت تناسب در معنا دارن به یه نفر گفته شده مشخص وصله همه هم انشاءیه وصل بین الجمل على عربه الاتفاق همایشان مع وجود المناسبه نه نه لا لای جلو هانا که سببون یت ازف چون چیزی که ضای فصلم کنه خب اون کلام از امیر الممنین بود وله به عبیبک انتری عنه. و این هم نسبت داده شده به بیبک میلیون سوول اعام اینم ولی عبیکن از بهجلل اماه یعنی و یون سوول عبیبک انتری اللهاند گفته ا یا هم آهای آه مردم اون اولی که قصد بود او خلیفه باشه خطبه خاندین طور گفت ایوه هنناس آهای مردم یعنی یا ایوه هنناس اینی غلی تو کن من بر شما حکومت داده شدم ولایت داده شدم من بر شما والی قرار داده شدم ولستو به خیر کن و این تو باز قطع شد حالا ببینیم که چرا امروز اینطوری میکنه خب میگه ایه هنناس یعنی یا ایه هنناس این جمله انشاییه اون این ولیتو تو عط نشده ببین چون اون انشاست این خبره روش شد و تناسب ندارن بعد انی ولی تو علیکم ولی تو علیکم خبر ان این, این جمله ولستو به خیر کم اگر ادر شده باشه به جای ولی تو علیکم بسته خب بحث تشریک در اعراب من بر شما حاکم شدم و بهتر از شما هم نیستم معطوف در حال که معطوف از موارد اشراک در اعراب میشه بلست. ولی بعضی گفتن این وابا خالی است اگه واو حالیه باشه، که دیگه اصلا بحث فصل و بحث نداره یعنی من بر شما بلایت داده شدم در حالی که بهتر از شما بیسته. نگاه کنید فسلا بین جملته اینه ایوهن ناس یعنی ایوهن ناس و اینی بلیتو علیکم لخلافه ما خبرن و انشاءن و بینه هما کمال و انقطاع بینشون کمال انقطاع این معلومه و وصل بینه جملته این ولی تو علیکم ولستو بخیره لعنه ها اریده اشراکو هما فی الحکم علی ارابی اراده شده اشراک اینها در حکم ارابی از کل هما فی محل رفت خبر این و از آکانت الواب و للحال فلا وصل ولا فصل ها اگه واب برا حال باشه دیگه وصلی وجود نداره فصلی هم نیست بحث فصل و وصل میره کنا میشه قید جمله میشه قید ما قید حالت داشتیم خب بریم سر مثال بعدی و قال عبود طیب. جناب آقای عبود طیب بود اِن نویوب نیوب جمع نائبه است یعنی مصیبت ان نویوب از زمانه تعرفانی مصیبت های روزگار منو میشناسند گفت هرچی بدبختی تو دنیاست با من آشناست منو میشناسم این نیوب از زمانه تعرفه گفته انلزی تاله اجمه ها اودی من همون کسی هستم که تاله خیلی طولانی شده اجمه ها اجمستر عجم اضافه شده به فایلش اودی مفعولش اجمل اوده یا اجم طول اوده این دوتا طرف دهان دندان تیز هستش که نوکش تیزه ها؟ خب؟ اینها میآمدن تیر میخواستن بخرن تیر برای اینکه کمان بزارن و تتی چوبهایی که میخواستن استفاده کنن نی بود خب این چوب ها مرا خاطر این که این نی باید ن سفت باشه مثل حسیر نباشه حرکت نمیکنه چوب سفت باشه نی محکم تو پر باشه که تیر بذارن سرش مثلا آهم بذارن اونایی که تیر شناس بودن و میخواستن انتخاب کنن ببینن این تیرها به درد میخوره یا نه آه به درد میخوره یا نه این تیرها رو بله تیر نی خیزران بوده این نیها رو همون خیزران ها گای اوقات بعضشون تو خالی هستن مثالت تاثیر میشن اینها رو می‌ذاشتن زیر این دندونه میشه و با... کنار دهانش یه فشار میدادن متوجه می‌شدن که این چوب سفته یا بگید شله اگر میدیدن شله نمی‌فریدم میداختن دور اگه میدن می سفته این به درد تیر می‌خورد امتحان میکرد میگه من زیر اینو تو فارسی هم میگن میگم من زیر دندون روزگار زیاد رفتن یعنی روزگار منو زیاد امتحان کرده ببینه من به بخور هستم یا نه ای منو برا کارهای خودش گزیده. میگه این ننویوب از زمانه تعرفونی مسیبت های منو میشناسم همشون منو امتحان کردم چرا؟ چون انل چون من همون کسی هستم که طال عجمه ها اودی خیلی جزیدن این مسیبت ها بر چوبه من بوده آه خیلی منزیر دندون این ها رفتم این مصیبت ها خب جمله اول جمله خبری است جمله دوم هم خبری ازه اما ع نشده عطف نشده چرا به دلیل اینکه جمله دوم جواب سواله بگید مقدره که وقتی گفته مصیبت ها روزگار بدبختی ها میشننان این که گفته از کجا میشنناه؟ خب چون؟ من زیر دندون اونها زیاد رفت نگاه کنید اوسا چیز اوجسم هم خیفتن یعنی احسم الهم خوفا یعنی از اونها یه نوع خوف کاش گفته و خوفم ما خوفند ما یعنی یه نو خوفی از اونها به دلش افتاد یه نوع شد که با خیفتن جور بشه دو اجمل اوده یعنی از زغ روز نگاه کرد اصول اصلن هو و امر خو گرفت که بدون اون نیل سلبه محکمه امرخون یا رخون شل یقولا قد طالت صحبتی للزمان من با روزگار خیلی درگیر بودم و قد جربنی و روزگار منو زیاد تجربه کرده من هم صحبت روزگار زیاد بودم روزگارم منو خیلی تجربه کرده عرف سلابتی و صبری هم محکم بودن من هم صبر و تحمل من رو شناخته الان نواعه به بعد مصیب از خودش نگاه کنید فوس لبین شطره البیت لعن نسانی من هما جوابونن سوال نش امنال اولافه بین هما شب و اتصال. خود مشخصه دید چهار نگاه کنید هشتون دیگه مشخص میگه چی؟ میگه لا و کفیت شرها کفا اگه دو مفعولی باشه منعنه وقاست حفظ کرد کفایی تو که یعنی شرش رو از سر تو کم کرد خب حالا نگاه کنیم ولا کفیت این لا و کفیت شرها یعنی نه از شررش تو در امان باشی تو از شررش افزشی شررش به تو نرسه انشاءالله خب چی بوده؟ توجیبا به زال که منقال یه نفری برمیگده به شما میگه از احبت الهم از احبت الهم ما المریض المریض یعنی اون مریض معهود مثلا حالا یکی از اقوام طرف بوده گفته آیا تب اون تب الهم ما از اون مریض رفت اون مریض تبش پایین اومد اون جواب داده لا نه و کفیت شر رهان تو انشالله تب نکنی خواه میخوره به الله. تو انشالله از شرش در امام باشه اویلی چی میگه واسه لبین جملتای لا و کفیت از اختلافه ما خبرم و انشار اما وفیل فصل ای ها مخلاف مقصود؟ اگر ما فصل می آوردیم که که خبری که انشار خلاف مقصود به دست میاد و بینه هما کمال و لنقتا مل ایهام پس بین اینها ها کمال انقتا هست کمال انقتا داره اینکه خبر این شد اما مل ایهام کمال انقتا به همراه ایهام اگر ما بیاییم فصل بیاریم پس بنابراین وصلش بیاریم خب این بالی قالت حالا اینو گفتیم این آیده امددکن به ما تعلمون امددکن به انعام و بنین و جنات و میگه خدا به شما امداد کرده ام؟ کمک کرده به ما تعلمون با هر چی میدونید بعد میگه امددکن به انعام و بنین و جنات و اویون. خدا بهتون امداد کرده به انعام چارپایان بهتون داده گاو شطور عصب الاق استر فاطر اینها رو بهتون داده و بنین و فرزندان پسر داده قبیله رو حفظ میکنن کارها رو انجام میدن و جنات و باغات رو بهتون داده که شما مجبور نشه دنبال دیاه از این ور بیابان به اون وره بیابان کوچ کنید باغ زدید خودتون و جنات و اویون باغ چشمه میخواد چشم ساره. اینا اگر کسی این چهار رو توی بقول خودمون زمان قدیم داشت اون زمان منبع ثروت بود مثل این که بگی مثلا کارخونه داشته باشه بانک داشته باشه بیمه داشته باشه دلار داشته باشه طلا داشته باشه که الان بورس داشته باشه سهام داشته باشه از اینجا چیزا الان نه آ منبع ثروت اون موقع الان منبع ثروت اینا بوده یعنی کسی اینا رو داشت همه چی داشت اه دیگه ثروتمند اون زمان انعام داشته بود بنین داشته بود جنات داشته بود, داشته بود،, داشته بود. یعنی هم نیروی انسانی داشته هم کشاورزی داشته هم دامپروری خب احمد به ما تعلمون خدا به شما امداد کرده کمک کرده آنچه که میدونید خب چیزار چیزاره میدونیم اینا مهماشه که گفته دیگه یکی اون چیزایی که به ما امداد کرده خدا سلامتیه درست شده نه من هم خبری که نگفته بعضیش رو گفت ببینیم ایشون چی میگه یعنی اگر اینطور بخوایم بگیم این به بن آمن و بنین بدل بعض از کله بعضی از ما تعلمون رو بیان کرد میگه نه بین جملت امددکون به ما تعلمون و جملت امددکون به آمد و بنین و جنات و اویون کمال الاتصال فا این نسانیت من هما بدل و بعض این من الولا بدل بعض از این از انعام و البنون و جنات و بالعویون بعض ما عالمون بعضی از اون نعمات و قدار که این همونیست خب درست بریم سر مثال ده و قال عبول اطاهی جناب آی عبول اطاهی گفته میگه قد یدر کو قد یدر کو راق دل هادی به رغدتی و قد یخیب با و اخر روحات و دلجی میگه این روزگار نامرده اینطور نیست که همیشه هرکی هرچی هر چی حق بشه او این قد اینجا به معنای گاه ها نبرنه همیشه که همیشه اینطور نیست میگه گاهی یدرکا ار راقدو یعنی به دست میاره راقد یعنی کسی که خوابیده. خواب. الهادی یعنی هادئ. یا از سمزه است حدوء آرام میگه کسی که آروم گرفته خابیده گاهی اوقات به دست میاره به رغدتهی با همون خوابش تو همون خوابش به واسطه خوابش به دست میاره مفعول یدرکو افتاده یعنی کل ما یوریت همه همون که به دست دوست داره یکی خوابیده آروم با خواب همه چی به دست میاد. خوابیده بلند میشه میگن اه تو یه دایی داشتی توی کویت بود مرد ایش هم وارث نداره میلیاردها دینار کویت به تو رسید بیا بردار با میخوابه بلند میشه مگر اه تو فلانده یه پول گذاشته بودی فلان ماشین به اسمت در بیا بگیره ها گاهی اوقات میگه یه همچین چیزی میشه یکی خلاصه آسمون لیسمون میشه با خواب خوابیده آرون با همه خوابش همه چی به دست میده و قد یخیبو و گاهی اوقات هم یخیبو یعنی از دست میده به دست نمیاره خوابه یعنی از دست داد و به دست نمیاره قد یخیبو اخ روحات و دلچ اون کسی که صاحب شب پیمایی ها و دوندگی هاست اونی که شب تا صبح داره شطور میدونه دنبال خواستهش قدیفی دست خالی میمونه گیر نمیشه دماغ سوخته میشه یکی میبینی با خواب به همه چی میرسه یکی میبینی میگه هر هم میدوی چی گیرش نمیاد میگه گای وقات اینطوری میشه این الان این دو تا جمله خبریان هاشون متضادن ها نگاه کنید یدرک و یخیب یعنی لا یدرک خردو هم خبریه درست شد هردو هم فعل مزارند و گاه هم دارم برمی کنید شرایط عدف رو دارند نگاه کنید وس و وسل عبولتاهیه بین الجمعه لعنه هما اتفاق فل خبریه و بینه هما مناسبتون تا عمتون که یکیش فعل ها متضاد و لیسه هناکه مایفت فصل، از هم وجود پا این نگاه کنید الروحات روحات جمع روحه اسم به معنی رواه به معنای رواه یعنی غروب و یا از سیر و آخر نهاره و هوا از و آخرن نهاره من راه یروحه و حرکت کردن در آخر روزه یعنی اول قروب شروع کنه برفتن از راه یروب زد قدا یقدون یعنی صبح شروع کنه برفتن و دلج جمع دلجه دلج جمع دلجه من عد لجه از عد لجه است من اول لگ از اول... یعنی اول شب شروع کنه روحات بره میرسه به تاریکی و تاریکی ها هم بره یعنی از اول شب تا صبح بگازه چیزو گیره شایدو یقولو قد یدرکو القاعد مطالبه و مطالبهو گاهی اوقات آدمی که نشسته هیچ کاری نمی کنه. همه خواسته به دست میاره و یخیب و المجد و و دست خالی میمونه اونی که کوشاب و ساییست خب بریم سر بعدی و قال القذیش کن اناسه داشته شکایت میکرده اون این آقای قزی شاعری مال همین قزه که الان خداعزادشون رو زیاد کنه اسرائیلی ها رو که دارن اونجا رو ظلم میکنند و انشالله که خداوند هرچه زودتر نیشتشون رو میکنه این شاعر مال همونجا بوده مال قزه یشکو انناسه شکایت میکرده از مردم از مردم شکایت از دست مردم شاکی بودند. حالا بخونیم ببینیم چی میگفته مردم چه شکلی بودن که اون ازشون شکرد بوده گفته فل فلبعسا من غیر علت یسودون یعنی یه آرزون میگه اعراض میکنن آزادم اعراض میکنن فل فلبعسا موقعی که دست آدم پنگه امورات سخته در سختی ها اعراض میکنن من غیر علت ببینیم که علتی داشت. چون تو پول نداری نمیان درفت هوا تو نداری این و یمتسلون الامر و النهی الامر و النهی یعنی هر نوع امر و نهی یمتصلون. یعنی یوتی اون اطاعت میکنن هر نوع امر و نهی خب فلخفزی اون موقع که دستتو بازه ثروت داری میگه چون پولداری. داری موقع که دستت بازه می‌بینی هر کاری بگی می‌کنم آقا بله قربان بله قربان پست داری مقام داری پول داری همه جلو دانش میاد بله قربان بله قربان هر چی بگی انجام میدم اما همین مردم موقعی که تو از دست بیفتی انگار از اصل افتادی آدم حسابت نمی‌کنه بدون هیچ علتی یا سودون افل باعسا من غیر علت و یمتسلون الامر والنهی کل خمس این مشخصه دیگه هر دو جمله خبریان هر دو فعل مضارعند و فاعل ها یکیه درسته و مسند ها ها هم متضاد با همه تناسب کامل دارند نگاه کنید 11 رو کزالی که وسل الغذیه و بین و بیت لما تقدم حالا پایین نگاه کنیم میگه البعثا از شدت و الخفص از تو و نعیم آسایش رو نعمد ما که دست باز. بریم سر دوازده لالا عبولالا ابو لالای مردی گفته میگه لا یعجبن نکر اقبالون یوری کسنا اینالا اموده لعمری قایت الذرم این به مردم بدبین بوده میگه لا یعجبنک شیفته نکنه تو رو آه. خوشت نیاد اقبال اون از یک کسی که به تو اقبال میکنه روی باز نشون میده یوری کسنا اقبال کردنی به طرف تو باشه دی. یوری کسنا سنا یعنی نور یه چهره باز و نورانی ببینید جذبش بشید گل نخوری یا؟ میگه شیفته نشی به یه باز بودن چهره ای که به تو روشنایی و نور نشون بده یه چهره بازی که میدرخ شده به روی تو میخنده گل اینو نخورید اقبالی که به تو نشون بده سنا چرا؟ میگه انل خمودن لعمری قایت و زر. میگه زیرا خمود یعنی موقعی که آتیش میخواه دیدید زغال رو روشن میکنن اول که نفت میرزن که برید میزنن گر میگیره دو متر این همه آتیش رو میبینن اما یه آتیش به درد کباب کردن و به درد سوزندن و اینا نمیخواه میزنن تا چی بشه این آتیشش میاد پایین دیگه نگاه میکنی میبینی که خمود یعنی آتیش خابیده میبینید روش هم حتی یه ذر خاکستره اون قایت و زرم، اون نهایت اون داغی آتش زغال اونجاست اونجاست که میگن کباب ها رو بذارید کباب کنه میگه این کسی هم که میبینی هرد رو پرت میکنه هرد پرت میکنه مثل آتیش هست که خیلی بالاست این خیلی ازش نترس ولی اگر دیدی یه کسی بهت میخند و فایی مثل آتیش زیر خاکستر این نهایت شد. ان الْخُمُودَ لَعَمْرِي قَایَتُ السَّرَمْ لَعَمْرِي یعنی لَعَمْرِي قسمی به جان خودم قسم جمعه معترف است به جان خودم قسم خمود فروکش کردن آتش اون گره اولیش نهایت سوزش است قایین میده از سنا زو البرق و خمود و نار سکون و لحبه ها اون شعلش بخواه و زرم ذرم اشتعال و نار بالتهاب ها آتش و داغ بودن آتش التهابش میگه اون موقعی که شعله بلندش خابی بود. خوب شد. جمله دوم به جمله اولات نشده. چرا چون شبه کمال اتصال نگاه کنید. و فصل عبود الله بین نشتر رایل بیت نه نبینن هما کمال لغت آن میتونه باشه شبه کمال اتصال هم میتونه شو جواب سوال مقترح اونم هست هر کدوم بگی نه نبینن کمال لغت آن از جملات آن مختلفاتان خبرم و این شان میتونیدم بگی که نه بین الجملتایش شبه کمال اتصال چرا چون جمله ای نال قومودن لا امریقای تزرم جواب سوال مقدره این قشنگتره مثل لا تخاطب الذين ظلموا انهم مغرقون این جواب سوال مقدره این قشنگتره اصلا که تو کتاب گفته گفتن هر دوتاش جز جزء موازعه فصل کمال انقطاع باشه یا بگیم شبه کمال اتصال باشه که شبه کمال اتصالش قشنگتره این اینو نگاه کنید یه میگه مردم میگن اینی احمل و زایم یعنی ظلم ظلم ظلت میگه مردم میگن من حمل میکنم ظلمو یعنی ظلم به خودم رو تحمل میکنم این دخون پیش مردم میگن من تو سریخورم میگیم خلاصه تو سریخور هستی یا نه میگه عووز رو براب بیان یو زا و نظیری قناه میبرم به خدا علی کسی مثل من تو سریخورم کسی مثل من تو سری خور باشه کسی مثل من بهش ظلم باشه مگه میشه یعنی پناه بر خدا اگر کسی مثل من مظلوم باشه میگه بین جملت یه قولونه اینی احمل و زیم و جمعه عوض برد بربیانی و زامن ازیری شپ و کمال الاتصال لعن نستانیت جوابونن سوال نشاملل الورا فکر کنم نشاید بعد آناتو به شدت قبل من البیته بعد از اینکه شدت قبل گفت احساس نصابان یا گول کسی بهش گفته و حال ما یا گول نهوم من هم مکتات هم بلوز زمی سهی آیا این که علاقل ازش میگن تو تو توسط دکوراسی زن تعمبل میکنی درسته؟ با جواب به شکر استانی نه خیر درست است چهار داره ببینید کدابه قوم موسی میگه میگه یسوموناکون یسوموناکون یعنی یحملو نکون تحمل میکردن به شما سوءالعذاب یعنی علعذاب از سو از نوع اضافه صفت به یعنی فرعونیان به شما تحمل میکردن بدترین عذاب ها رو بعد میگه یذب بهون ابنااکون و یستهیون نزار این یذب بهون ابنااکون این چیه بعضی از اون سوءالعذاب دیه ها میگه بدترین از آوا بهتون می دادم بعد نمونه هاشون میگهن یزب و یا تلیون نصار کن، سر می بریدن زنانتونو زنده نگه می برای شنمت. و من بین جملت یا تومون نکن سوذا و جملت ی زب کمال لل اتتصااله. فین سانیتم همما بدل و بعض من اولت. خب بعدی و قالت حالا ما ینتقان الهوا پیغمبر نطقی نمیکنه سخنی نمیگه از روی هوا و خودش پیغمبر از هوا و حوث صحبت نمی کن. از روی دلخواف و هوا و حوث خودش هرک نمی سه بعد میگه این هو و وحی و این حوث میخوره به نطق که از ینتقا فهمیده میشه زیرا کلام او نیست مگر وحی که بهش نیوها کلام او وحی و است که به او میرسد این جمله ان و الله وحی و بیان اون مای انتوانه. این که از روی هوا هوا صحبت نمیکنه یعنی چی توضیح میده یعنی اینکه هر هرچی میگه وحی است میگه فصل الله تعالی بین الجملتین فیل آیت الكریمته لهم بین هما جمال الاتصال فإن الجمله الثانيه بيان للاولا بحث فصل و فصل کامل تمام شد یک فصل دیگه باقی مونده از علم معانی درست شد اجازه و تناب و مساوات ان الله برای جلسه بعدمون موفق و معید و منصور باشید در پناه خدا والسلام علیکم ورحمه الله و